یکم صحبت فردوسیز و صحبت مدایدی تلیشو ولی من گفت که اینم میخونم حضرت افرین رو باید بگم که حرض کردم که خطایش اگر از بر اعتقاد باشه به دل آدم مینشینه و آدم با و عرض میخونش اما نرمیون تمام شعرهای ایران دو تا شاعر از همه شوهرهای دیگه بیشتر مورد ستایش قرار گفت یکی رون تکیز یکی هم فردوس از حتی بسیار شوهرهای دیگر هم مورد ستایش بودن توجه شده مثلا حافظ رو بسیار کشم ستایش کردن دلون. و دیگران دیگران اما بیش از همه فردوسی مورد ستایش قرار از قدیم والایام تا الان نظامی وقتی میمده فرگوکی روش عزت میدشته سعدی وقتی میمده فرگوکی روش اعترام میدشته دیگران دیگران همینطور فار روزگار ما که دیگر اصلا هست، و, و, و. و بعد هم این این خوب دلیل داره یکی از دلایلش همین اهمیت این سطا آدمی که در حقیقت روزکی شعر فارسی رو بود پایهی گذرست بعد این پناه اصطوار نزم روی او قرار گرفت. قبل از رودکی شعرهای بودن ولی هیچ کدوم طوری نبودن که بتونن یک شنط حاول پیروهی درست خودم و در روزگار خودش گفتن استاد شاعران جهان سرسایه مروزی سرودکی در سال تیستد مرده سال, مهم. سال سی ست و مهمه روزکی در سال سی ست و بیتون در همون سال سی یا سی به دنیا آمده لان قیبت صغرای عرضت و قابل امرم در سال سی تبدیل شده به قیبت کبره سال قیبت کبره سال سال, سال تعلیف کتاب خاصیه محمد ابن یعقوط و لبی ارز کنم که کسایی مروضی 341 به دنیا آمد یعنی چند سال بعد میشه توازده به 341 30 سال سال شنبه دو روز واقعی از شببال بیا آمدم به جهان تا چه گویمو چه کنم سروت اما سادی کنم به نحمت و مال. این آدم که 11 سال بعض مرگ رودکی که آمده میگه رودکی استاد شاعران جهان بود سعد یک از وی تویی که تایی یرگفت یرگفت یعنی هرگفت همینطور دیگران خیلی خیلی زیاد خیلی زیاد از رودکی شعر گفته شده و فتایش شده همه فتایش کردن شعر شدون کردن آوردن بعد از روزکی هم فردوسی و کار شاهر بزرگ روزگار ما سه تا غفیده در محت فردوسی باز کنم که غفیده ها یکی از یکی زیبا البته. و همین باها، با اون غفیده هایی اون زیبایی میگوید که ما همه گفته این ولی حسین مخشوب و از همه بهتر گفتند که یه تیچه ای از فرگین فردوسی رو که محصور گفته اینجا آوردم واسه این محصور رو به احتمالاً بر با چای قبل از انقلاب اشناسن داستانم مینوشت تو اطلاعات بحن فرق زلباش حالا همکال اینا شاعر بود و اینم شاعر عجیبی بود شاعری بود که ازش قذل و اینا هی جز موضوعات ملی این که من هیچ اعتقاد ندارم میگن که این شاید که نفردازی این تقلیل از گذشتگان همه شون یکی همه هن، همشون میشینن قابل یاردی، نه؟ حسین مسئول شاید درجه یک فضال نیم توسوسی داشت شعرها اگر مفهوم ملی و سیاسی و اجتماعی داشت به بهترین صورتی حالا فردوسی میخونه یه قصیده داره در زم تریاب چیست یا آقراب این به زهرا به تخم توچنار حفن عاویت خطاعته ولی یه جون غزر عزیز برده هستی چون نمیتونه, تره. نمیتونه تره. این حسین مسرور یه شعری گفته هست همون سال که 1313 که برای اولین بار هزاره فرزوسی رو گرفتند و من آوردم این جایی می رو میگه خونم براتون که یه ذره کیف کنین و بعد بریم سراغ کارمون یه قسمتی از این مدایه هم البته آوردم که کیا گفتن چه کردن چه کردن ولی شعر مسرور یه قسمتیش البته اینه میگه فرگه که اندیش بیدار بود و آلاغش تنصب و بود به نظاره جلوه ما تا در دیدگان بست بر روی خواه یعنی اندیش داره بر براسود گیتی به روز همه خفته جد فکر گیتی خروز کنار خط کهکشان روی ماه درخشنده دستم شهر پیش سفر در شب دل اندیشه توز داشت به شهر سفن عظم پابوز داشت به گفتم دلا ره دراز از دو به گفتن نبا سرعت سیر نور بگفتم گفتم آرین مراو ارمغان به گفت گرم و طب روان. ز گردی که از آن خواهدن آو برم پراو سرمه چشم جمع آورم. از آن برق رخشنده جان تو را پرتوی آرم آفا سوز و از آن آب حیبان که در جام او ز آو بشکر سرمدی نام او ای آخرم خوشگوه تو خوردی نفتا بیدت روزگاه برامد دل از دینم آهواز شتاقان اندیشه راه باشد به مرق سهر بالو پر بام همه راه را تی به یک گام کرد تو بکشو دل دیده برخواه که او جنین گفت تا سربت پاکه اون که میزم میمانت کجا زمین ها بلندات مانت کجا مبادا ما کنی دست زحمت دراز بدین سر که از بیشدی سر فراز برویمت بنشه به پیرامنش به گل قره کن سر تا دامنش به جشن هزار رشد هزاران هزار بیا برخونی به بهار که بر یاد او شادمانی کنن برافند و شهنها مخواه تو ای ابر فرخونده جالبات خرامنده شد و لالزار هر برگ گل قطره ایوان کن گلابی به کن جام کن هران کس که آوید به دینجهش نگاه بروش روی از چهرهش گرده کجا گفته ای؟, ای؟ بلند آفت برون آوی و بر فرد گردون به من در خور توست روی زمین تجا خیز و بر چشم دوگران نشین بیا تو زشنامه گیتی فراوازه ز گیتی فراوازه است جهان را خوان کرد و خود تا تو گفتی جهان کردم من بهشت از این بیخ تخم سخن کس نکش ز جا خیز و بنگر از اون تخم پاک چه گل ها دمیده است بر نه آن گل که در مهرگان پجمرد نه خندیده بر شاخ بادش برد نجور جور خزان دیده گلزار او نه بر دست گلچین شده خاره او زرگان پیشینه بینشان ز تو زنده شد نام دیرینشان تو در جام جمشید کردی شراب تو بر تخت کابوس بستی اغاب اگر کاوه زاهن یکی توده بود جهانش به سوهان خود سوده بود تو آب عبد دادی آن نام را زدودی از او زنگ ایام را تهمتن مکار خان تو بود به هر عبد خان میهمان تو بود توی دودمان سخن را پدر به تو بازگردد نجاد هنر چو بخت عرب بر عجم چیره شد همه روز ساسانیان تیره شد به ایران درخشی فروزنده بود که ایرانی از پرتو زنده بود زدم سردی شام فتح فتو، بیاب آن آتشنگیز انگیز رو برآورد تازی زبان دست قهر دهان بست بر فارسیگوی شهر به هنگام سامانیان بزرگ بران شد که بگریزد از گله گرگ دگر باره این آسمان کبود در ترک تازی بر ایران گشود به دوران محمود ایران مدار سوحنور بسی بود در روزگار همه مده محمودشان پیشه بود به کار دگرشان نندیشه بود هران کس که در مده بودی دلیر پسندیده بودی به درگاه میر یکی را زره پیلوار آمدی یکی را ز خسرو نسار آمدی ز استاد خواقانی آرم سخن که فرمود در نامه خیشتن بلی شاعری بود صاحب قبول ز ممدوه صاحب قران امصوری. نه تحقیق گفت و نه پند و نه بعد که حرفی ندانست آن امصری به دخبیت سد بدره و برده یافت ز یک پتح هندوستان امسوری شنیدم که از سین زد دیگدان ز زر ساخت آلا خان امسوری کنونش از آن سیم و زر سود نیست از آن دیگدانش به جز دود نیست تو را گیتی از شاعران برگزی زبان تو شد گنج حق را کلی غنات نمودی به دوران خیش به باغ خود و لغمه نام خیش نه بالا بود با چون تو گوینده را که گردن هد منت بنده را حرام است بر زاده بفر و شیر که گردد ز پتمنده گرگ سیر ولی نعمت حکمت و پندراز ندارد به نانپاره کس همی داشتی در دل این آرمان یکی آرمان برتر از آسمان که بر چرخ سایی سر خامه را به نظم آوری باستان نامه را. نمایی به ایرانی خستجان نیاکان کوشنده پهلوان مگر فر پیشینه یاد آورند گذر بر ره پیش داد آورند. زبان کهنگشته پهلوی کنی تازه چون عهد کیخست روی. به دین آرمان رنج بردی بسی بیابد چو باشد کسی بر افراختی قامت رستمی نشان دادی از همت آدمی سخن پرچم پردرخش تو بود قلم تیغ و اندیشه رخش تو بود توی دومین کابه روزگار درخش تو شهنامهٔ نامدار گرو اهد زهاک را پاره کرد که یه تازی از کشور آباره کرد تو ایرانیان را شدی رهنمای به فر فریدون و راه نیای خدایت به کار پیروز کرد شب تار ایران به تو روز کرد شجعت چنان همت نامدار که سی سال بر جای مند استوبار نه پیری تو را کرد در کار سرد نز بینبایی شدت روی زر تنت گرز پیری گرانخیز بود دماغ جوان آتشنگیز بود دجا خیز و بنگرد که در خاک توست بدستی زمین نیست بی بود اگر بیمت از تعنی انصری زمان نشسته پی داوری چه ترسی که میمندی زنده است؟ هزاران چو میمندیت بنده است اگر شاهت از پیل خود بیم داد و زیر دغل جای زرسیم داد چو تو بیده غفراشتی برقوار چو محمود را مات کردی هزار گرت بستن بند تو آرزوست خراسان زنام تو پر آبروست برآمد یکی نهره از غعر خاک نه از خاک از اون مرغد تابناک به گفته گران مایه فرزند من ز پشت سخن پاک پیفند من هماورد من در همه خاک نیست مرا از چنین خاکیان باک نیست مرا زنده پندار چون خیشتن من آیم به جان تو من آیم به جان گر تو بتن درودم فرستی فرستم درود بخانی بیایم ز گنبت فروت دعای تو بر هر چارت شتاب من آمین کنم تا شود مستجاب چون مجده قیبم آمد به گوش ز سخن یا ز فرخ سروش سوی دادار دست که ای آفریننده هر چه هست نگه اورنگ جمشید را قوی پنجه کن شیر و خورشید را به ایران فروغ کوهن تازه کن جهان راز نامش پراوازه کن البته این دو داره ولی اینجا باقیش من طب باقیش من ستاش رزاشا از دور هزاره تهروسی سازی احفا ظلم احسا یکی از بهترین ستاش نامه هایی که از تهروسی شده و خواستم که بری این نام. نم کنم که این که این شخص یعنی این همه شاعر اینقدر مورد که تایش خواهر گرفته, این یه سردی داره یه حسابی داره و لاجبه این که کتابش هم چه حالی داره و چه وضعی داره باز همین است. از کنم که هیچ لزومی ندیره ما دلائل خیلی علمایی هستم که بیاریم عدد یافت بگیم، فلسطه بگیم، نمیره هم استعداله‌های عجیب غریب کنیم خیرا این سوانمه کسی همون گونده‌ایست خیلی بزرگ شهت هزار بگیم بعد این که چاپ نبوده که بلون چستم می‌نوشتن؟ نوشتن این دو سال مثلا طول خدا از آردونم اون جواد شریکیش آنها من نظر منده چاپ شد منده نگام که سال جواد شریفی خب این دستموز اون کاتر نمی نوم زن از اینا نون بعد املکت ما هم که خلو خلو بوده نمیدونم. خوضا عوض میشده هر روز آسایش و آرامش نبوده یک کسی دستور میدوده بعد میمرده یا برمیشکسته یا وضعی بوده عزلش میتردن مالشون میگرفتن هزار مانع بوده برای نوشتن کتاب این بزرگ برایدم که نوشتمیش تو خب بین و تمام این احوال با تمام این احوال بیش از پونسد نسخه شاهنامه کامل دستنویس که از اول تا آخرش هست برده در هست بیش از 500 نصده فقط در کتابونه های عمومی هست یعنی هایی که شاهنامه رو فهرست کردن فهرستش چاپ شده ما دیدیم ولی در دست اشخاص در کتابخانه‌ای هایی که فهرست نشده در گوش او چقدر هست کدام دونه بعد ناقصا و نرانگی بخواید به حساب برید که لات و عد و ولات و حساب سه هزار این کتاب، این گندگی، از این همه مدت نوشته شد به کار آسون که نبوده این مال اون وقتش اما بردیم که چپ هیچ سالی نیست که شاهنامه دوبار، دو, دو بار، یه بار، دو بار چپ نشه از جلوزی که چپ چرو شد داره الان اینجا هم این کتاب بودش که ما رفتیم. خنجر تو پس اون را منجو بود. این اگه نخران خواب نمیکنان چه؟ میخرن، مردم میخرن، پس معلوم میشه که میخوان، که میخرن. حالا بفهمند، نفهمند. یه خورده‌شو بفهمند. اصلا هیچ‌چیزاً من نمیدونم. ولی کتاب حماسه شماره دو در شاهنامه اسطکی 50 سال بعد فردوسیام ساختش. شاعرش هم شهری فردوسیام استاد بوده هیچ خرب هم در استادیش نیست بشتاس دو بار تا حالا چاپ شده فقط یه مورد از سال اونم به خرج عزاز فرهنگ مرموم عبیب یعنمایی چاپ کرد این ارسد این اواقع تو بازار بود یه بارم دوست سال بیست دو باره چپ کرد داره بیت هم بیشتر نیست سال اومه شست به سالی چند دفعه چاپ میشه بشتاس اومه از بعد به اخیار سعنت چارتاره دوست چارت شد یعنی چیانی یعنی آنون نخریدن حالت از برای دو بای دوست دیگه باقی دیگه شو فکرش رو بکنی و عجبتر اینه چلی تا وقتی خیردوسی این رو نساخته بود میگفتیم که خوب شوهرات سرمشت نوشتن تا مدلی مودلی میخواستن اون بایش کار ده. از که فردوسی شانه همارو ساخت بازم تالا یک نفر به حریمش نزدیک اصلا نشده اصلا اصلا نزدیک نشدن به حریم فرده حال دلیلش هم هم میگم موضوعات شانه همون بسیار مهدید جنگ و حواده شد، حواد خ... به خیال فردوسی تاریخی که بیشترش پهلوانی است یه یعنی چند تاریخی است البته که حالا بحث میکنیم یه تیکیت تقنیم یک صرفان شاهنامه تاریخیه ولی قسمت بیشترش هماسه و هماسه میدون جنگه و عرصم که و خورده و اگر مطالب نیگر از همه اگر از یه عشقی که صحبت میشه باز برای اینکه که پهلوان به وجود بیاد و بیاد میدون بسن یعنی به این دارم تهمینه که عاشق رستم و چه بود تو تا اونجاییست که این وحچه زایده بشید دیگه بعد مادر آسان میری کنار به پلی یادش خوی نه تمام میشه میتونی. این موضوع بسیار محدود رو شهر دربار پادسا شهر میدون جنگ مقدمات میدون جنگ اویانان مذاکرات سیاسی هم کل اینا تمامش در یک بحر به یک وزم بسازه تا اون وقت در آدم درس خونده یه فهمیده یه متله از چنیدنش خسته نشید من یه،, یه بنده خدای مرشدی بود یه بود به اتفاقا نفال خیلی برایی هم نبود برای که اگه خیلی نفال هنروندی بود می‌کفتم خب هنر خودشه مرشدی بود انشالله که زنده باشه، پتیگاهی تو نظامات توی قبخونه نرد اون تازه می‌گفت که میگن خیلی هم نقال همچین برو زبونداری نبود می‌گفت من نمی‌دونم چه سری تو این کلاما حکیمه به محضه این که من سلام بلد تلویزیون رو تلویزیونم اون روزگار با اون بردامه‌های که داشته با ساعت می‌کفتشه چیه نمی‌کنن مردم اولا هم بفال و چفال و عرق‌ساعت می‌مدن و مردم بزرگتره که ملازه این به این ترتیب جز داشتن نبوغ یعنی یه چیز بی همتا و یگانه نمیشه باشه برای این که این چانونه رو انشالله اگر اون گرفتید باش و اگر الفت گرفتید و اگر شروع کردید و اگر آشنا شدید بکنید که بتونید خودتون دست بگیرید بخونید میبینید که نه تنها ملول نمیشودم اصلا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 کلمه شاهنامه یعنی چی؟ چیز کلمه شاهنامه دو میدونی که دو جوز بره نامه ارض کنم که نامه ونی کتاب کتاب من نامه. هر دوشم این نوشته خوتا بلند و, و مفصل اون مخفصل نداریم اونکه حالا ما مراسل رو که حالایم که که نامه کلحت نیست ولی نامه یعنی چیزی نوشته مفصلم باشه بازم به همین از قدیم قابوس نامه داشتیم نمیدونم سیاست نامه داشتیم به امثال اینا حالا مجله در میاد ایران نامه یعنی کتاب مردی که ایران کتاب هم, هم همینطوره کتاب هم به معنی نامه هم به معنی نوشته بازم این نامه یعنی نوشتن یعنی میمونه شاه شاه چنانتی میدونی صفت اول است. اسم اونه که بابانانه آدم اسم بچهشو بذاره هیش گفت اسم بچهش نمیداره شاه و آدمی هست اسم میداره بعد این شاه میشه یا از شاهی میسته این بسیاری از صفت هستن در زفن فارسی که به جای اسم به کار میرن مثل استاد مثل معلم مثل بقال مثل همه هیچی داری که شغل و دلو دارست نه همه صفتی به جای اسم به کار میردی که یعنی بقاله گفت که نمیدارم چی سی به جای اسم به جای اون اسم اون شخصی که مبتدی اون مقام هست بکارنی ولی این تنها نیست آخه چا به صورت قید در حقیقت قید تفضیل قید رنید شاه حالا شاهنامه هر دوی اینا رو می که یکی گفته نامه شاه کدوم شاه جنس شاه این شاهان فائلیش این بوده که میدونید که قرب های هزارها، هزاره ها ریژیمی که سلطن ها ریژیمی رست به عنیابوشی تشکه سلطنت بوده که از همون به دست جات کچلو و قبیله های سروم شده تا تحسیز دولت و کشور ارگرم یعنی و یه نفر سرفاره است و اون سرفاره به عنوان حالا الان مد شده به خصوص از اینکه افکار سوسیالیسکی اینا ها تشبیه که اینا نمجبباران و احوال رو میگن مردم رو پاید ندارن، من چیز ندارن ولی اول اینجا که نبوده این به عنوان اون ملت و اون جمعیت و اون مردم این شاه شنافته میشده و احوال شاه رو که میگفتن یعنی قرآن احوال اون مردمه که میگفتن و ارحال تاریخ تبری مثلا تبری مولا بوده آخون بوده اصلا درباری هم نبوده کتابش نمیسته تاریخ رسول و, و الملوک قبل شاهنان بزن تاریخ پیغمبران و پادشاهان تاریخ پادشان تاریخ جامعه بوده حالا البته ای کسی جز بیشینه شهر عوالی یه رو نیسته و اون ملت با این افکار امروز این درست نیست بلی درست با این افکار امروز داوری که ازن در باید هزار سال هم درست نیست اون زن و اون فکر و اون زندگی و ما ما هیچ خلوم جزیات اون زندگی رو به تصبر منم نمیاد اگر یک از 10000 goutteش توی یه کتاب چیزی نوشتش بشه شما الان شاهد این انقلاب اسلامی بودین همتون در تایم اون بتونید چقدر خود این اصلا شما دیدین دیدین شما دیدین اصلا امامان عادی شاهد نیستش بس یه چند تا ریش بس یه از صحنه ها شو که یه نفر بیشتر شاهد نبود باقی بعد هم الان حالا همونایی ام که دیدیم بخوام بگم من تو اینکه بگیم ما چطور ما میتونیم مرد شمای دوره فردوسی دوره حافظ دوره سعدی این را داقری کنیم و بعد بگیم که ولی این قلق کرده این دوره بیخوش این دوست نیست. نه هر جهت یا نامه شاهان مراده یا اینکه که اصلا شاه نامه یعنی سای کتاب هست یعنی بهترین کتاب هست همون یوری که میوه یعنی بهترین میوه ها شاهنامه همینی بهترین نام ها و بهترین کتاب حال این معنی رو هم میتونه داشته باشه اول از کنم که این بار اول اسمش نامه بود خداینامک در فهلبی و خدا و خداوند برحالی صاحب و مالک اصلا اون خودا هم که میگن خدا یعنی اون مالک همعالم، خالص عالم من دستم و فرزان به من آماد خلاف و او را به خدا و به خداوند سپردن یعنی عربات خود ها این آمه که فرلوی رو وقتی خواستن به فارسی ترجمه کنن به فارسی و عربی هر دو یعنی اول که به عربی بعد دیدن که چون خدا رو در پارسی داره پروردگار گذاشتن دیگه صورتی نداره که او رو همون رو برای را افری کنن خدای رو دیگه نمی در عراضی ترجمه کردم سیارون ارول ملوک و این رو هم یه ایرونی تبا به طبع در ایرونی مادر ایرونی که در سن سی و چند سالگی سرش هم از بابات من بکر جل دستاد یعنی عبدالله بن موفق روز به سر داده فارسی این خدا ناماش رو از تحلیلی ترجمه کرد عربی، به نام سیار و لطیف، و که این دیمونی ناموند متاسفانه از این داد، ولی از در متفاوت است های هست. اول هم اول بار جامعه‌گری این کلاسن ها علاوه بر کتابی در آمدنش از صورت شفاهی در سال 346 استفاضه است استفاضه در حال در سال 339 یا 340 دنیا اومده یعنی 16 سالش بوده که برای اول این این داستان ها از شفاهی به صورت کتبی نغروش بهبار از این بوده که یه مدتی قبل باز پیون میخوره و رودکی رودکی رو امیر ننفسش سامانی دستور میده که کلید دم رو که وزیر امیر نشر فارسی ترجمه کرده بوده رودکی منظوم بکنه رودکی هم این کارو میکنه به پیور او یا. خود فرزوسید نهارویم کنه و طیبت گویا پراکنده را گویا یا نشاهد به صفتین چند این دو این منظوم شدن این منظوم شدن که دولنه از حوادث بسیار بسیار عظیم تاریخ ادب ایران ایکی از حوادثی ریشه تمام حوادث عددی هیشه. اولا هیچ کتاب هیچ قصه‌ای، هیچ کتاب تاریخی، هیچ کتاب هماسه‌ای نیست که از این کار تعلیف شده باشه و از اهمیت این، این داستان نقل نکرده باشه از جمله در شامان پردوسی به بحانه این که در روزکار انموسی دوان که لیده از هند و به ایران داستان کش میده تا اینجایی که اون نیست پرشمده دلیلش این بود این کتاب به اندازه ای توفیق بده چند اولا که به روایتی ده هزار دینار و به روایتی هشتاد هزار درهم اوندکی سله دره برای اینکه درست بفهمید که ده هزار دینار چقدر بنده ارز میکنم که هر دینار یه نسبال تلاس یک مثقل حالا معادل اونجوری که یک من ششتاد چل مثقل ده من میشه مثال. ده هزار حالا گیره نزدیک پنجه کیلو هلا. به روایت دیگه گفتن که درهم خود امیرنس داد چل هزار درهم هم سرشکن کرد که امیرانش بدم. اشتا درهم درهم هم یک مفخال نقره اما در این پنج گرم نقره اگه بگیرید میشه هزار گرم یعنی چار ست کلو یه خربارو یک بکنه خربار کتاب رو هم حد میزنم که در حدود سه هزار این حدس و استاد من، محروم ودیو و زمان پروزنفر در وقتی که شاید هم نبوده، کتابی نوشته نام سخن و سخن وران اونجا این حادثه که اشاره میکنه به حادثه استاد رودکی، نوشته که ظاهراً کتاب تیزار بیت بوده و در هاشمی نیسته با استنار این شعر فروصی. فردوسی میگه زعبیات برای شانمه خودش میگه زعبیات قرار درستی هزار سخنهای شایسته غمگسار اگر بازوی از او بیت بعد همانا که کم باشد از پانسد نقید کسی نامه پاسی نوشته به عبیات باسی ست باسی با هزار تا میگه نامه پاسی سه هزار بیشتر نیست و این اشارات به که محروب ترین نامه اون روزگار و این شهرت فوق العاده که پیدا میکنه موجب میشه که کلیله به قول مقدمه شاهنامه عبو منطوری که از شهر میگه یک در زبان فرد بزرگ گفته. و نام او بدم زنده گرش نام یک کنین این آموه شامی ای البته شاعر صاحب تح به صاحب سخند صحب و برسر شخور هم میاره که بنشینه به کار مهم میبکن ساری به مراسب مهمتر از کاری کهی و یه جمعی میگه میگه من نشستم این کار کردم همه این کار کردم تا روز تیری مرا برده هست ذر و ینج و دینا رو افتر ده هست هم حیثیت میخواسته هم هم نمیخواست از میره بمیره این که دیگه مشروح ترین خواست دیگه آدمی سن هشتاد سالگی بگه من هیزم ندارم هیزم من وقتی پونزه سالم بود هیزم خواهرباری ستا هم هیزم ندجاری خوشت اگه نه هیزم هادی خبر، خواهرباری ستا هم حال موزگاه فهدوسی هزار سات از اون جو و قرمه و اییزم ندارم. اون نتون سگقرازون که سنگ می که نماندم نمکسود و هیزام نج. نمود پوشتی بوده که قمه می نمیدونم دوستم چند تا رو میدونم چیه چچ نمیدونن. در ایران به خصوص هنوزم در نواحی روزتاری این کار می ولی مرسوم بوده که پاییز یه گفتند و پربار می کاملا چاق چاقی می کنند بدفرش می تو دنبه خودش سرخ میکردن کردن گوششو با نمک بسیار با اصطفاناشم حدود سبان کن با نمک رسیاری دنبه سرخ می کردن می دخنم تو چه کمبه و اینه می زشتن و زنسون خورد خورد اینو می بریدن پس دو درست میکرمش بخورد و من یادم بچگی در دوره پهلتی اول افایر دوره پهلتی اول سال های عزازت که در بدبالی معلم‌ها یکی از چیزایی هم داشتن قرمه بود مشتاق محمدی بود این قرمه داشت نیز عبدالله هم بود اون ور برکدار بود قرمه داشت میباریدم با فرد و یک که صورتی را قرمه بده میگونم دو فیلم قرمه بده میگرف این روش بگم نمکسود در ذرنم بگم که این صنعت رو سروازان جنگ های صلیبی سروازان اروپایی که رو جنگ های صلیبی و آماروی از مسلمین یاد گرفتند و آمد شد صنعت کالبستازی فعلی با, با این آداب و تحصیل. این صورت تکامل یافته همون صنعت کنسر کردن گوشته که هنوزم به صورتهای نسبتاً افتدایش در الجزایی رو اینجا هست و به اون آدم کنسفتال میگن جزار با زه یعنی کسی کارش همین کنسفت کردن گوشته و بعد آمد دیگه چیز کردن و خیلی خیلی اینا تغییرات دازن و تغییر چک دازن و کار مهم کردن ولی اصلش از اونجا وقت باید به صورت کالباتی که تو در روسیه و هرگش محتماز بست به از این کار هست در میگه نماندم نمکسود و هیزام نه جو نه چیزی پدیده تا جو درو جو درو اولین قلهی که حمل میاد نماندم نمکسود و هیزان نجو نچیزی پدیج اصلا جموف درو دو دست و دو پای من آهو گره آهو یعنی عیب یکی از معانی آهو آهو یعنی ناخوت یعنی عیب این غیر از اون آهو یه عیبونی در فریشه شون بایم فرق شد دو دست دو پای من آهو گره تویی دستی و سال نیرو گره علا این که را چرخ بلند به پیری چه داوری مرا ختمند تو بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خارد و مرا خاش هرگز نه پروردی آن چو پرورده بودی نیازوی خب نه خودا گشت میمیرین که دیگه یه آدمی با اون شعن و شعن و, شعن و با اون چه و با اون طب طبیلیست که می خواهده که در تا سا سوید اما با تاهم اول اون قرصه ای که متاسفانه هنوزم تو کله نهد نهد از جماعت مردم ما هست که صورت محمود قرار گذاشت و با فردوسی و که بیا یه بید که میتازه یه دینار تلا بگیره و سازه قابلی نبود در اون که بروندکی دردارم قابلی هم نبود یه دینار تلا بگیره و بعد نغره دادن و بعد همچی شده که،, که که در سر سال, سال بعد مرگ فردوسی این خسته نوشتم چهار مخاله چهار بعد این ترین کتابیست که راجعه فردوسی شده سر سال, سال بعد فردوسی این هفتانه رو نوشتم که آره چیز کنن و سلا و قبول نکرد و برداد به همومی و نسلات به همومی و نسل فول وجود و تو دو در رفت رو دلیلش خیلی ساده است. سانا برم سلطان محمود خوب. سلطان محمود در و, و یک مرده بر سی و و هفت ساله پسال 328 ها، صوت محمد سپسال آخور است. حالا همون سال قبل هم که نه با و کنترل دستی کار می‌کرد، که شاید یه مدتی هم بودی بعد به ولایت کار می‌کرد. پسال 328 ها بر دستی بیش از سال بوده که چانه مشروط داشتم نیستی. در سه سال بعد، از در سه سال بعد، از سفرسال روی محمود تمام میشه تا بعد یه ده سال دیگه صرف روتوش کردن و ادیت کردن و افزودن مقدمه و سایر مسائل و مقدمات داستانا و, داستان و ترتیب دادن این به کتاب میکنه. آمود کجا بوده اون که ایشون مفاتسان ها بهترده که قرار سال بوده به دوستی علت اینکه این کار کرده این است که در دوره سامانی یک چنین نواق و انعامی رو دیده فکر کرده خب منم کار مهم رو بکنم همه زندگی شما مادی و هنویران گرشده رو این کار ملک و آب و بساط و زندگی و سی و پنج سال عمر و جوانی و چقدر بدون دنبال این نقال و قسط گوه رفته چقدر برشاورده شراب و جوابشون داده و من رو کشیده و نازشون کشیده و آورده چیزشون کرده تا یک قصد و بعد به کار ملتوهامش هم نرسیده روستایی ها بردن و خوردن همه چی مایسوزش کردن و از که موقع پیریدی ریچش هم نرسیده. این فکر کرده بوده که من چاهنامرو وقتی تمام کنم دولت سامانی که باز من از مرحوم استاد خودم مرحوم جلال الدین حمایی شنیدم که فرمز که هر کار بزرگی در ایران اتفاق استاده پایش در دوره سامانی رسیدید که ایرانی بودن یکی دار دارم، که از ایناش من دسته داردارم چون هستم یکی از این ها احسانم که اینا ایرانی بودن به ایرانی بودن خودشون هم استخار میکردن ولی بعدش ما تقریبا تقریبا این سلطل ایرانی رو هداریم محمود که توی بازار پروخته بودن به بندگی سباشتکین رو و خریدارش هم تازه زی بنده ترک دیگه سامانیان بودن هم علتکین و, و پسر محمود سلطان مسعود هنوز تو تاریخ بیعقی هست که وقتی میخواست حرفی رو با اینکه سه پشت چیگه پاتران بود مثلا وقتی میخواد که هرچی دیگر اون نفهم من میگفت به اون آجر بگمون درخونو بساده برای که دیگر نفهمم. نفهم بعد از اون ترکیمان های سلجوقی می آهم که تقرول بنیان گذاره سلجوقی هست سواد نداشته این ایش نه مثل من سواد نداشته ها علیه دو بلد نه اون داشته کنم که میگه توقیش تو راحتو سیدونیست توقیش چنین بود یه خطی کشید توقیش چنین بود در شکل کماقی به جای انزا و پارت کردن و نمیزمی کردن یه چیزی مثل فراغ میکردن بلای این هم بالا بعد از فرجوقی ها خارت جایین آمدن که پولامان زرخریده فرجوقی بودن تازه اونا هم همهشون عرض کنم که عطفز و نمیدونم فلا نوشتکین و این اسم همه خواهد پایارم که هم دلو باید مغل و گفت غم اشقامات و غمهای دیگر تاک ببرد سوزنی باید که از تاک برابت خاری مغلا آمدن و یه ساعت سالی اونا داشتن و باید تهمورتش بود که مرموم اصدادمان مزرمون ساعت درجه به دست بود به از کنگیز که اونا دیگه دعوی مفرمونی نمی کردن و بودایی بودن دیگه وده بودن آه. بودایی بودن دیگه وده بودن بودا شون مقدس نبودن و اصول مقدس بودن نه قرآن مقدس بودن نه کتاب نه حساب نه هیچی ولی این محکه چهیاد عرق میخورد مثل خر و اول کسید که در در اسلام در احوالش کلمه عرب آمده این عربچه ها میگه که برای او مشروبی از تختیر شعب به دست میموردن و یو فمون همون عرق و او رو عرق مینامیدن اشون زهر مازد بعد حافظ قرآن بود بعد میموند یه کوفر داد قتله هم کردن که پدر سخته ها شما چرا با امان حسن بیوفایی کردی حالا بعد اومده مثلا اون قوم و کاشون نفده سوخته ها خارجه هستین یعنی شیعی این به جون تشایی بودون تحانه میگرف میکرد این هم ها اونم بودن اون هم دنبالش سب سالی بودن بعد صفحویه که در شعوردن اصلا توک زبون بودن بر دربار اسطحان این از خنده داره در دربار صفحویه در قلب اسطحان ساتچهان صفحوی ترکی هر و سلطان سلیم در. قسمانی در قسطنطنیه یه فارسی هست. از اسماعیل اول و شاه دوم دیوان ترکی در دست هست شاه اسمایل اول متخلص خطایی و شاه دوم متخلص عدلی بعد سلطان سلیم دیوان شعر فارسی در دست، این هم دوره صفاویه بعد از یه, یه چلپنجلسا کریم خان بوده که اون لور بود نادر شاید افشارم با اینکه کرد بود تمام مخالماتش به ترکی همه جای که میرد ترکی هست و بعد هم کاجران من کاجران هم کاجران هم مزفق از این شاید من از تبریز لحجه شدید داشت. را اینا بلی اح اوستاندار ازاربایجان بود و با یه مجتمعت تبریزی که فارسی در اقل هستدنش و هردت نوشتنش بلدشان همیشه ولی هفتانشو بلد نمیدن میومدن تا اینا مینادن فارتی هفتان یاد بگیرن ربون نه اون شامیم خود دیده از چیزی که باست فهمید میومد برحال این ورز زبون خاشتی رو داریم مجرد بردوسی وقت شانوش تموم شد فقط محمود بود و محمود خریدار این بازی اصلا نبود بعدم یه کارایی کردن بعد یه قراری گذاشتن که چیزی بهش بدن بعدم ندادن ولی اصلا به اون صورت اون افتاد عودانی و پردوسی تا سال یا سال دنبال یه کسی میگشته این همه داشته تعم میشده بازم دنبال این بودی که من یه کسی رو پیدا کنم که این ها رو به نام او بکنم چه بفهمم به نام کسی نبوده اکثر شهرها همینطور برابر اینا به کلی این افسانه از نظر تاریخی قابل تصدیق نیست اصلا و بله خاطریات که دغا جان فارسی بود ولی اونها نرسیدن اون تو 50 تا هم, هم. تکون بخورن می‌خورن امرلیثو یعقوب بعد یه دراشون کردن پس در در تمام از آثار بعد از اسلام یعنی اون فقط دو تا سلسله فارسی زبان بوده و پهلاوی بودن بیگه، پهلاوی هم بودن، کریم خانم به هفت بوده و پهلاوی هم؟ پهلاوی هست می‌تونه نمیشتن، ارز که بچی و سامانی دویست سالی ادامه پیدا کرد، مثاله مهم این می‌دونی که در, در کارهای فرهنگی همیشه روبنا و کارهای روبنایی تل پنجه تال بعد از استقرار یه رژیمی می‌تونه تازه شروع بشه تو نیست که اون ساعتی که پیان بسیار از ساعت پرییر میدن ولی اثرش بعد داره میدن اینست که اون دورهی که شروع شد به این کار دوره سامانی بود که کار افاسی هم شروع شد مثلا پار اقتوری ترجمه شد تفتیر اقتوری ترجمه شد نمیدونم همین شاهنامه جمعوری شد که حالا تفتیل جمعوری شاهنامهار میگم حال حالا مسئله بیشتر الان مسئلهی منظوم شدن شاهنامه بود بسیله فیض که از کردم که این تحتیل بوده مطلق آرتیم احمود نداشته منشاء اصلیش همین کتاب شاهنامه عبو منتیوی بوده که بعد هر که هم زد و یه مقدار زیادی هم روایت هایی که از دیگران میشنیده و بسیار جاها میگه کسانی که براش داستان ها روایت یاد یا دهخان بودن خود سردخسی هم دهغان بوده و میگم دهغان چی بود چون معنی امروزشون نداره یا موبد بودن اون موبدان هم به هر حال دانشمند بودن من یه چیزی به شما بگم اون این است که تا پیش از رنسان در هر جای دنیا که شما تصفید از چین و تفت بگیر تا اروپا و ایران و اندونزی و مالزی و شمال افریقا و جنوب و افریقا هر جای دیگه تا پیش از رنسانس مدرسه که می‌گوستن یا نیمانسه آخون دید. فقط بقید به ساسانیان همینطور شاه و دب ایران و کارگزانندر باید اخوند آخون بزنندر اصلا مدارس قدیم خودمونم تا و قبل از اینکه بلوم و جدید دایر میشه منجم و طبیب و ریاضیدن و جغرافیدن و فیلسوف همه اینا اونجا تربیت میشه دیگه همه رشته ها اونجا تربیت میشه و در ایران که تا پیشت مشروطه مدرسه مطلقا مرسه آخندی بوده یعنی های که درس مخواست بخونه و اینجا مرسه آخندی درسه آخندی و به همین دلیل موبدان هم که روحانی بودن تواقع با ثبات و ثباته یه بودن که شعرزاده ها را تعلیم میدهدن دبیران هم اونا تعلیم میدهدن بنابراین فردوسی خیلی از محافظ مکتوبش خدا خداینامه یکیش بوده و با بعد باقیش هم عرض که چی بوده یه مدهاری هم محافظ شفایی داشته که اینا یا گویندهش دهخان بوده گفتار رو دهتن یکی داختن به تیهندن از گفته باختن یا موبت بوده به موبت به دنگونه برداخت یا تروستن برابر از باختن یا رفیقش یارش اینجا یار میگه قصه قصه ایجن و منیجن یار من گفت برای من شب بود و خوابم نمیورد شب تاریک مود و الان من داستان بسیار روای داره این تاریکی شبوینا برایت استحلال اول داستان چون که داستان, داستان داستان زندان تو داستان چار هست و زند هست و زنجی هست و, و, و, و, و بدبختی شرح شب وزیار سیاه حومناکی رو اولش میده شبیشون اون روز سسته بگی نه بحراس پیدا مجیوان مکی از اینکه از همون, از همون اعتدار داستان شنونده بفهمه که قصه <تص> برحال یه این شبی من خوابم نیمت و بیارم گفتم که یه مرابان دوستی داشتن در خونه گفتم پشو شمی بیافوز و پس بیا و بیا و فلان و اینا و گفت چیه چه خبره چیگی شبه تیره خوابات نی آیت گفتم نخوان نمیاد و رفت و شم آورد و می آورد و, و نار و ترنج و بهی بهی, بهی هم به وقت به. عدالیش بهی با شروع کرد و روز مواقع رو زد و می دادو، و این حرفا رو بعد گفتم که داستانی برام بگو گفتم این داستان میگم ولی به شرص اینکه که وقتی شنیدی به نظم آوی از دفتر فعلتی نظم برای ضروع مختلف، مختلفات جاهای دیگری روایت می از کسانی یکی پیر نامش آزاد سرد که با احمد سهل بودی به مرد تجاه نام خسروان داشتی دل پیر و بخت جوان داشتی به وقت ملی رو داشته این آزاد سرد از و از اینها یه عمری میگیره و جمع میکنه و 35 سال میفردم این کار تا, تا این شاهنامه برد 5 سال اندر کتاب و خیش رن ماند از رنجی چنین گنجی به دین محناب زنده شد ایران از این شهناب مگرد تشاقرش خون دل خورد و ندید از بخت الا مدبری جوت محموزی در آغاز جهنگیریش بود چون پوزون شد گنج راضی راست و آزمد ضرب کف ناورد زیرا کار فرمایان بودند بستند چون که دل بر نقش زر جعفری بر یک با هرس ها باقی جعفری ما اشتباه میشه شه مای بحاره قصیده ایت از میخونم بعد به نام کل سیده تیجو فلترا یه مسئله عربی یعنی همه اشکارها در شکنه گور خره قبول کردن نه نه محمود داردش پولدشانه دوره محمود تموم شده این که ستابچه ها نوازنیم نیست که داد بستن که به سرسینکار رو بخونه و اینقدر بیرگیره چند چیزی نبوده از کنم که قصیده ای داره بنامه کل سیده فیدیو و یعنی همه شکارها و شکمه گوره خره مقصود این که اگر کسی بخواد بره سهرای شکاری بزنه یه کبوتر بخواد بزنه یا یه خرگوش بزنه یا حچ یا آهو بزن اگر یه گور خرجش اون عدد مثل اینه که همه اونارو رو زده چی هم اضافه زدی این ترجمه فارسیش یعنی در پارسی مثالی که ما داریم چون که صد احمد 97 هم میشه اگه اون کلمه دلیلش اون رو ترجمه کنید میشه چون که صد احمد 97 میشه منظور باهر اینه که شاهنامه رفی در آدم همه چیز رو داره بعد من این غزلیه رو براتون میخونم ولی حالا اجازه بدیم که یه چند یک کتاب سر احوال فیدوسیس و زبان انگلیسی آقای دکتور شعفور شهبازی نوشته کتاب خیلی خوب کتاب کوچیکی خیلی بزرگ نیست ولی بسیار بسیار کتاب خوبی است. که این آقا هم آقای خیلی خوبیست تاریان سال هم هست که راجب سانامه داره تحقیق میکنه کار میکنه یکی از کارهای بسیار قابل ملاحظهش این است که سال و ماه و روز تاریخ طولیب تردوسی رو استخراج کرده از روی از، از گفتارهای شاهنامه دیون آورده و برای اولین این بار که چنین کاری کرده عرض کنم که این کتاب رو انتشاهات مزده چاپ کرده و انتشاهات مزده همینی این شاهنامه رو هم چاپ کرده و اینجا بنده باید بگم که مطابقه کانه ما مردم خود خیلی نیدیم خودمون نیدیم چیست پیرهیرونی اینجا خود زیاد ولی موقع کار حیدی مرد کار نید شاهنامه شاهنامه اینقدر می کنی کردیم از ملبار اصلا قبلن اینه بگم این افتانه شنیدنی ما پوز هنیش دو شاهر خلاوندگاه دارید یکی فردوسیست، فردیف فاریخ فردوسیست و نظامیست و مولاناست و زعوی و حافظ که به این مرتبه یک شاهری نجید کتاب فردوسی رو اول بار یه انگلیسی چطید رو پن بارم یه فرهزبی چطید ثبت بان یا یه آلمانی چاپ و ما هیچ وقت ما یونیا چاپی از شاهنامه که قابل عرضه کردن در بازاره بینالوهایی باشید نداشتیم با تو الان امیر باست خدا امیر بهادر رو بیا مرد ترک دیلمز که فاسی رو با لحظه شدید تحسیل زد و فاسی طبعاً بلد نبود از پور خودش دستور داده بود که یک شاهنامه بنویسن بهترین خط بهترین تصویر بهترین کاغذ بهترین چاپ خط امادو الكتاب و معروف به شاهنامه امیر بحادو یعنی اون چه اون شعورش میرسید از هیچ چیز مزرگه نکرد چاپ این کتاب ولی کتاب در نورستن تو قلب خونه میخوره برای اینکه، که پوزلای ایرون یه شاهنامه ای که فردیت داشته و حل این در دنیا بشه, بشه. استنافه کنند حالا پوزلای ایرون نکردم اون شاهنامه ای یعنی هم میداره هزاره فرد و سی تاب شد شاهنامه ای بود که هموند آلمانی شروع کرده بود تاب کرده اون اولی اولین اولی تاب شاهنامه ای تا که انگلیسی هر کرده به مردی بود به نام ترنر مکر او تاب کرد در هند دو پن بار جل مول پراسوی دیدار. در ذویات قضایای هست که بسیاری سه تاریخ بوده، تاریخ هست. اسمش تا 60 سال پیش تا پیش نمی‌دونن. بنابراین دامنه کار هنوز بازه، بسیار بازه و گفتم ما هنوز هنوز چاپ درست نکردیم. انشالله حالا چاپ کالوگی تموم بشه برای اولین باری استاد ایرانی الحمدلله بدون مننت کشیدن از دولت ایران. و بدون استفاده از پول دولت ایران این کار رو کرده و انسان الله محفظ یه مقدار کوچکی یه جزه بسیار کوچکی از اگه از بخریدم یه پشتیبانی خیلی خیلی اندک ماهی است از این زحمتی قیمت کشید توست دادیم مثله شیونتانی از کیسی؟ اصلا اون مقای از روز اول از روز اول از قبل از بعد از رهلت رسول اکشم یه ادهی معروف شدن به شیعی و اینا با چیز عبو باید مخالفت کردن حالت گروه خیلی کوچکی بودن ظاهران مخالفت این مسائل مربوط به کار ما منی سالا چهر اینکه ما کنم که یه گروه کوچکی بودن و بعد هم علی ابن عبی طالب بسیار است که با اینا کنار تو و که کرد و بعدا معمولیت و بعدا کار داشتن مهمتر هست همه این که حضرت زهران بعد از چیش ماه بعد از ذهلت پیغمبر ایجا هم ذهلت پرمودن و حضرت بیگه زن نداشتن، جوان بودن، زنهای متعدد گرفتن، الحمدل الله و پسران و دختران متعدد داشتن چهار تا پسر دختر از بطن فاطمه داشتن که حسنه حسن بن و فاطمه بن علي عليهم السلام و دو تا دختر حضرت زينب و حضرت ام كلثومه ولی جمع پسران و دختران حضرت 18 تا پسر و 17 تا دخت دختر. واله ما ان از ام البنين مادر عزاد با عباس. و عباسشو میدونم من الان حضور زین ندارم اما مساله این است که همه اینا در روزگار بعد از حضرت فاطمه و بعد از حضرت قیقنبر به دنیا آمدن تو این هست چه تاشون؟ یکی اسمش ابو وکر علی یکی اسمش عمر ابن علی یکی اسمش عثمان ابن علی. و چطور میشه آدم اگه اینجوری که ما در می میکنیم که اینا پایه هم با تیر زدن شما حالا 1200 سال میگذاره حاضرین اسم و چه کنی میذارین عمر؟ دیگه؟ طبیعیه یعنی که تو و که تو ممکنون وقتی بچه خودش رو از عمر و عثمان پیدا که این اختلاف اگرم بوده اختلاف جوزی بوده مثل همه اختلاف های سیاسی که گای کشید رو رفت ولی بعد جماعت ایرونی مشالله رو مشالله کنم که اینو گرفتن و کشش دادن و ماده رو خلیط کردن دروست برای شق و مسلمین. برای اینکه حالا این یک حسا چیزه دولتی که در ایران روی پواره یه وقت سیویل ما رو گوش میده باست ارض کنم که شیعه رو ایرانی ها پیده کردن ایرانی ها پشتیبانی کردن تمام زهم ها و سرجمه روشن ایرانی بودن بدون استثناء و الان هم تنها کشور شیعه جهان کشور ایران که من از زمان حزه ایمان جحفر صادر و شیعه رواجه پیده کرده اون دوره دوره مرمون بوده و آزاد فکری بوده اینا سید بودن میتونستن به هم بطور شدن زیاد نمیشدن ایشون یه مستاری از خواهد و داشتن به کارایی کردن بحثایی کردن بله میونه اعمه شیعه ایشون از همه داناتر یا لعقل اگر بگیم که علم امام الهی و از جانب خوراست ایشون فرصت نشر اون علمو هیچ از دیگر اون داشت به همین دلیل هم مذهب شیعه معروف به جهتری شیع از این مسئله،, مسئله مهم مسئله امام آخری ایست امام دوازده هم که تکلیبش به همه روزگار وفاقه تا چی و تولد و از معلوم نبود نه چرا؟ بود که معلوم کردن حالا جگه ازداد هستن و خواهی بنا تشمیرن بلی نه اونوقت حتی تا این حد هم معلوم نبود هیچ. و هیچ کدومن از تاریخانشون نمیدادن که اماماتن عذکری پرزند نرینه مرینه کنش مرادر ایشون جعفر آمد نواز بخونه به جنازه برادرش برادر رفت زدن یه مشت ایرونی ها کنار که آمد باری کنار آقا بخواد آقا که میگه آقا آقا پسرشون خب بید بخونه گفت نه تو میبینیش هلار شده نیمینه زنان کنار سیاش کردن اسمش شد جعفر کذاب و الان در کتابای تاریخ اهل سانتی نمیمسان جعفر سانی جعفر ابن علی امام علی النقی یه پسرش جحفر بودی هم حسن امام حسن امام شد جحفرم بود امام حسن بچه نرینه ندا. تراشیدن و تعطیب دادن و از کم به قیبت برسادن و غیبت صغراب و غیبت کهراب و همه این حتا و حقیقت خدای تعالی میدونه و برای اینکه تصور نفرمایید که بنده کفت میگم نوزو بالله که کفت بگم باید عرض کنم که از هر ده تا مسلمونی در این دنیا ها نه نفرشون خیروه مذهبی هستن که بشنگن سنی البته سنیش هم شاخه های متحدد ولی حدود تعداد جمعیت شیعه بسانونی نسبتش یک به دهه و معنیش این سهر ده مسلمانی که توی این دنیا هست نهتش اصلا به اصل امامت نیست نه اینکه که به زمان قائل نباشه اصلا اصل امامت قبول نداره میگه این که پیغمبر جانشین از طرف خدا تعیین شده داشته باشه قبول نداره من و همین داردم اولای شما را این البته خاندان رسالاتو کمال احترام بهشون دارن احترامی که به علی بن عبی طالب میذارن میشه از اونیست که ما میذاریم به همه خاندان پیغمبرتو هر وقت کمال احترام دارن اما مأموریت الهی برای اداره دین و اداره دنیا اون وزیفه امام هر دو سیاست دینی و دنیاوی داره اینو قایل نیست دوتا اصله که میگن اصول مذهب اصولم از هبش یکی امامتی که حرف کردم، کنیا اصلا امامت قبول نداره. بنابراین بنده اگر بگم که ایجوز جمهوری اسلامی باشه از که بزرگم گوش همه ولی قائده این جزء مسائلیست یک ارتباطی به اصول اعتقادات نداره مثل منکر شدن جسمانی نیست که بعد به کلی خارج از دین بشدم امامت رو قبول ندارم. فلسفه. یکی هم عدله. عدل. عبد همان‌ها تو درستان همون گفتن خدا عادل است و ظالم نیست. مثل اینکه اگه بگیم که خدا عادل نیست یعنی خدا ظالم است. فسبحان الله. خیل. اونایی که معتقدی رو عد نیستن میگن نیست. یعنی که این دنیا جای سنجیدن عدل خدا نیست عدل خدا رو خودش و میزان خودش باید بسنجید با ما هرچه میکنه او خالق ماست ما بنده یه بوییم شما گوستند خریدیم سرشون خواهد رو برسن نیمونیم تابلو نرکاشی کشتیم این آقای تاهری یه با کلمور بنده میشو اه نکن آقا این خوبه میگه تو چمار بسنم خودم کشدم خودم, خودم. خودم. خودم. نمیشم با توی نمیشه میکنی ظلم کرد چه درش من کار باشه. بار خدا و خلق و العام، خانت و عام به خدا. بناوارین اصلا سبوت عدل در مورد یعنی با با با میزان و با عینك و با میارای مخصوص سبوت عدل کردن برای خالق خود باغچگاناست. بعد این پیش میاد که چرا چرا به من کلان چیز نهیدی؟ چرا به اون رو بار خدایا اگر زروی خدایی تینت انسان همه جمیل سرشتی تلعت رومی و تهره عبشیر را مایه خوبی چه بود و علت زشتی از چه سعید افتاد و از چه شقی شد زاهد محرافی و کشیش کنشتی؟ نعمت منعم چرا دریا دریا؟ محنت مفلس چرا افت کشی؟ نه و این درست نیست اگر فکر مکنیم که این خالق است که اصلا در ذهن ما نمیتونه بگونجه اصلا که چجور ممکنه پیش از زمان و پیش از مکان وجودی باشه چون ذهن ما چیزی رو فیش از زمان و پیش از مکان بدون غیر زمان و غیر مکان اصلا درک نمیکنه. و چطور صفات این ما میشینیم؟ چیز میتارش. بنابراین اینکه عدل و قبول نداره کسی معنیش این نیست که بگه خدا هست از حالا ظالمین عبدا هر این دوتا اصول مدخبیشی هست و امامت هم همینطور بنابراین امام زمون هم تابه اون اصل امامته این تردید تردید کردن صحبه کردن انشاءالله خیلی اصول ایمان آدم وارد جمعه بگیم بگیم که نابست مده بوده آقای جه خدا هم از خای مزین مسئله که از کار را بود که نسید این هست که استفادی کردی باشه؟ با. با اینکه به مرد بود باید هم پیش از مشروط رسول فرنگ و زبانه کارژی وارد بود لغاوی بود، امکان نداره از وجود تهرست بولتی خواهدن داشت شاید خب ما همه گفت شد رفت حدیث ما رو آخر آخریت به پایان نرسید شد را چه گونه ما بود گراه نینی از اون چه وجه هنوز من گفت یه از فریدستان خشید بوده آقایی از شاهنامه بویندهش به روتیو ولی بلی میدونید که هر کتاب نظمی یه منبع نصر قبلا داره خیلی خیلی نادره یک کتاب ادبی که خود بوینده هم قصده بسازه و هم خودش به نظم بیاره مگر منظومه های ارپانی اخلاقی و امثال اینا شیفت کتی یا گوینده عقیده خودش رو میگه مثل مثل نوی مولانا مثلا اینا میشه ولی داستان توگانی درست آتیخانه یا رزنی این حتما قبلا باید یه اصلی داشته بسید و مثلا فرسانه نظامی دونه دونه این کتاباش میگه که من از کجا آوردم چه کردم چه کردم و حدیث چه... خسرو و شیرین نهان نیست و از این شیرین تر الحق داستان نیست چه اوچه میگه این ولی در شهر بردع در آزب و در قفاز این داستان اونجا مونده بود و شهربند شده بود که کسی نمیشه من این گرفتم درست یا قصده بحران رو میگوید که من از نویسای بخاری یعنی مال بخارا و تبری یعنی مازندرونی این رو اول این قصده رو درست آوردم و تهیه کردم بعد منظوم کرد. شان هم همین همینطوره نه تنها همینطوره بلکه محقظش برمیگذه به دوران پیش از اسلام در اواخر عهد ساسانی قبلی که روزگار انوشی دوان و فرویز و اینا کتابی تدمین میشه با عنوان تاریخ ایران در حقیقت زبان پهلوی به نام خدای نامک. خدا یعنی شاه، خدای نامک یعنی که به دلیل اینکه بعد خدا به اصطلاح اسلاف در ذات پروردگار این است که چیز نکرد دیگه بعد دیدن که برای فارسی زبان‌ها که خدای نامه همش قابل هضم نیست، گفتن شاهنامه. ولی در پهلوی خدای نامک بوده و این کتاب با آداب و تضییق بسیار خیلی مزین خیلی آرافته نوشته شده با مرکب‌های رنگارنگ روی پوستای بسیار ذریف با جل گوهرمشان بسیار خوب و مسئله مهمتر این بوده که در بخش تاریخی یعنی سرگذشت فاشان ساسانی تصویر هر شاه هم وجود داشته و من از بچگی خودم بیادم شاید شاید بیدر من هم یادش بوده من نمیدونم خداش بیاموزه که ما میرفتیم در اماکن عمومی مثل قهوه خانه مثل حمام مثلا این سر بینه ی یا, یا محل توقف در قهوه خانه و اینا نقش تصورت های به زیرش هم نوشته بودن که این جمسیده این کیومرسه این کی تیهوباده این کلیقاقوسه این فلانه و اینا همه یک شکل بود یعنی چنین نبود که یه تصویر رو یه زیرش که قواد یه جایی زیرش می‌نویسن که قواد. همه اینا یکسف بود بعد روی ظرف مصر روی کاشی روی قالیایی که می می‌شد روی تمام اون جاهایی که این تصویر می شد، درست این تصویرها عیناً به یک و در همین شاهنامه که اینجا خدمت خانم هست، گرده ای از بعضی از اون تصویرها به عنوان همون تصویر اگر این کاشر بسیدن بعد و بعدم شنیدم که قسمتی از این ما قیمتی بوده دوستان ترندون برشان بردن و بیرون سوخ پندشون نخ خرید و فروش عتیقه میکنن نه تخصصی در این کار دارن نه اطلایدارن نمیدونم چقدر بوده نبوده ولی به هر حال احتمال این هم بوده است که این تصویر ها به دوران های بسیار قدیم و چنان که عرض کردند از اوه تصویرشون هم در اون خرهنمک میده <تصفيق> بعد خب به هم میخوره داستان رو عرض کنم که عربا میان و سلطلیت آسانی منقلیز میخور او ضافه هم میریز و زبون عربی زبون حکومت میشه یعنی زبون دین و دولت هر دو میشه هم زبون دین بوده هم زبون حکومت و کسانی که او حکومت سر و کار داشتن بعد اون زبون یاد میگرفتن دو داستان زیاد است و یکی از مسائلی بسیار مهم که من اینجا حتماً با بکنم این است که تمام عربی زبون جزیره عرب اونجایی که الان چهه جزیری که الان عربستان کنزی <تصفح> و یمنی اهل اون جزیره به این زبون هست بیرون کسی این زبون ها چه میزه؟ از عراق، مثلا اراق, اراق و آشور قدیمه سوریه فینیقیه قدیمه، سوریه و لبنان، فینیقیه قدیمه تو نفت، کارتاش قدیمه مصر، سه هزار و تا تمدانش از ما قدیم تریست یعنی شما تمدان مصر رو یک کتاب 200 صفحه زیوی ازش بخونین حس مخونین که ما از اگه تمدانونه، ما باید بریم چشک خودمون رسابیم اینو با این تمدان به این بزرگی، وقتی اسلام پاشو از جزیرت و لرف بیرون اینا همه زبون عربی رو به عنوان زبان خودشون قبول کردن و زبون یادشون دارد زبون مردم مصر رو الان یه مورد مز... آدم پنبکار بدبخت گروفنه عوام که بهشون میکن فلاخ و کارشون پنبکاری زیر اون هفتا بسیار تند مصر اینا یه زبونی هر که بهشون زبان زبون قبطی به انگلیسی یا خانستش خوب و اون زبان قبلی مصره با شامپولیون فرانسوی، همراه ما خود اون رفت مصر از روی اون زبون قفتی این هیروگلیف خط باستانی مصر رو کرد و به قول انگلیسا دی سعیفر کرد یعنی خوند و قواهی زبانی که به اون زبان قفتی بود الان مردم مصر اصلا یارشون رفته و خودشون روزه آه، عرب میدونن و مثلا که میخوان هنر کنن میخوان چطباده رهبری جهان عربم بکشن و عجبتر این که مطلقه عربای سودیش خود اونها قبول ندارن حالا پولدار هم شدن دیگه بستر و اصلا رو عرب است و یمنی رو همینطور داخل آدم حساب نمیتون برحال مثل لطلاند سوریه همسال اینا تو نصف شمال افریقا اینا همه زبونهای خودشونو رو فهموش کردن تمتون خودشون رو و شروع به عربی حرف کسند اولین مملکتی که گفت اسلام بله ولی عربی آخر ایران بود و در خود ایران در بخارا از تاریخ بخارا نوشته که مردم بخارا هرچه بهشون گفتن پول دادن که بیان نماز بخون نماز زبان زبون ما نمیگرده عربی و به الاخره کردن معافت کردن که نماز به فارسی بخوند و بعد الان حالا بعد میرسه میگم میگه مردم چین نهای مفلمانه چین نهایشون رو فارسی میخونه بله اولین کشوری که به اتفاقان کشوری که تمام دیکشنری عربی رو نوشته سرفانه و عربی رو نوشته هم سیب به به فارسی رو پارسی ایرونی کسایی معروف و اینا پای بزاره سرفانه و عربی اصلا اینا ایرونی بودن ولی خود ایرونی ها عربی حرف نزدن این که هیچ از ایران که گذشت اسلام با زبون فارسی رو به شهر یعنی شما اگه آله بخواید پاکستانی باشید یا هندی باشید یا اهل مالزی باشید یا آله اندونزی باشید یا چینی باشید بخواید آخون بشید همجوری که در ایران اگه بخواید آخون بشید اول بده عربی بخونید سرغنب بخونید برطق اصول بخونید اگه پاکستانی یا هندی یا موالدی بشین اول پارسی بخونین بعد کتاب دینی رو زبان پارسی <تصفيق> <تصفيق> یعنی زبان دینی شده اونجا و این که شنیده که احل هند و پاکستان خیلی به زبان پارسی عزت زبان خیلی دیر شما زبان پارسی رفته و خیلی اونجا نخوض داره زبان پارسی اولان آشقش شماعبروی ما نیستن نبودن به هیچ وجه. خیلی دی محبتی هم بهش خودمون نکردیم آخرین کاری که کردیم نادرشاه بود رفت تبورا رو ورزش تو فور کرد از جواراحتون برگشت اومد و خلاصه همچین جنب جم... بعدش هم که حکومت قاجار و دوره افساریه و بدبختی‌ها هم که دیگه ایران خودش چلوه خودش هم که بالا تا چه فرسه که کمک بکنه به رواج زبون فارسی یا توسعه زبان فارسی اصلا قبلش هم همتوره. در رژیم گذاشتم دوگیموش ظاهر چه نبود ولی مطلب این است که زبان دینی فارسی در اینجا به همین دلیم زبان مقدس و یاد می و طورت دهکورهی همینجوری که در ایران طورت دهکورهی ای ولی خیلی یه آخوند هست یه چیزی از فرسان هست عربی خونده و آشنایی و هر جهت با عربی داره در پاکستان هم که به دید طورت دهکورهی فارسی داره کمتر و همین این میره تا چین این رو هم بگم که به هیچ وقت ایرونی معروفه که سلطان محول زد بر هند و خضا کرد و جنگ کرد و چه کرد و سلطان خاضی شد تو از این حرفا اونم, اونم رفت تو برهاشو پرکت برگردون ولی اسلام به دست اینا در شده هن هند مستقل نشد اسلام به دست پیران تصوف از طریق خدمت به مردم از طریق محبت از طریق اخلاق و تذکیر نفس و دادن تعلیمات تثبب اسلام رواج پیدا کرد در این نواحی تا حتی در چین و کسانی که می اومدن به عنوان رهبر مسلمین این آدمایی بودن که دردهای مردم می معروف بودن به خدمت به کار مردم و به این ترتیب اونجه اسلام موند در حال زبان فارسی هم اینا رفت و تا اونجاها ما اصلا خبر نداریم بسیار از این ها اصلا خبر نداریم ما اسلام در مالزی را اصلا نمی‌شناسیم مطلقا. ولی مرجعیت اینو بردن و با زبان فارسی داشتن. به همین دلیل هم هست که اعراب وقتی میگن عجم مرادشون ایرانی صد بسنج گفت که صدام گفته بود که این آقا رو نمیدونم رو باید دو دفعه یا 10 دفعه اعدامش کرد. یه دفعه برای که به سر مرگ جرم و جاسوسی گرفتن، فرزاد وازگفت گفت و این درد اکه باید اعدامش کرده یه بار برای اینکه جاسوسی کرده، نوبار دیگه برای اینکه ایرونیه. این گرفتاری از اینجا هست که تمام عرض کنم که کار اداره امور و امریکت و مسائل و جرایانات اینا از دست دیگران گرفته. و هر جهت کداینامک هم پهلوی بود و زبان پهلوی باز یه دو کلمه اینجا بگم اینا متاسفانه پیش میاد اینکاری هم ندیم ما تصبر درستی از اینکه زبون که میمیره چجور میمیره و چجور زنده است و چه حسون که بمیره یا این حرفا تصبر درستی ای ندیم این روزی میدونیم که در چیز در دوره ساسانی پهلاوی هست بسیار بعدم میبینیم که در دوره اسلام تیگه سی سبتاله بعد این پارسی دریش کنگ شده هست دیگه. خب این زبان پهلاوی که مردم هست می زدن این که در زبان پنجه که نمی می نمیشم چیزی اون که فوراً از خاطر هم میره، زبان نوشتاره یعنی ملایی و کتاب بوندن و نام نوشتن و اصناد دولتی و اینا عربی میشه بعد از یه نسلم دیگه اون بلدی رو کسی سوادشون ندارید ولی توده یه مردم بی سوادی که یک معلم دارن مادرشون فقط و زبان از مادرشون یاد میگیرن مادرشان بی سواده این زبان از مادر خودشون یاد گرفته دارید دوسته دور افتاده این که سفوندی اصلا بلد نیست چون عربی هستم چون اصلا آدمش نمیرسه مطلبه به این ترتیب زبان نوشتاری جاشو عوض میکنه ولی زبان گفتار قرنهای متمادی باقی می‌ماند. ما تا قرن نهام منظومه داریم به زبان پهلک وقتی سعدی و حافظ می‌شهره به این قشنگی رو می‌گفتن در شیراز خودشون به زبان دیگه حرف می‌زدن اون زبان روش می‌گرم پهلک وا البته پهلوی هم مثل یک رشته زبونی درسم جایتون باشه که پهلوی یه ذات اون نیست پهلوی سلطانی فواز پهلوی اشمانی فواز پهلوی مانوی و اون پهلوی هم که مردم هات هست می‌شه با اونی که در دربار حافظی می‌شده فرق داره ولی به خاطر یه لهجهی بود شبیه لوری و این چیزا و تمام این طرح های روستایی و محلی که به زبان‌های محلی میشه، اینا رو بهشون گفتن یا بیت های پهلوی، بیت پهلوی خافز میگه بلبل ز شاخ سرد به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات محنوی این یعنی چی؟ گلبانگ یعنی سرود، یعنی ترانه باید بلبل سر شاخ سرد سرود پهلوی میخوان با سرود پهلوی درس مقامات محنوی با تو همین غزل میگه مرخان باغ آفیستان جند وزدگوی تا خاجه می خورد به پالبی. غزل های پهلاوی غزل چیه؟ بره حافظ زنده بوده و فقط همین نیست حافظ یه غزل داره که زبانی عربی فارسی و پهلاویست سبت سلمان به صدقه ها فهادی و روحی کل یعنون لی نگاه را دیدل بیدل ببخشای و واصل نی علی رقم العادی همان انکرسنی ان عشق سلما تا عربی و پاشد پذ اول آن روی نهکو وادی که همچون مط به بوتن دل و عیره قریق برل برلوه داد پذ اول آن روی نهکو وادی یعنی تو از اول آن روی نهکو را بباید بی جان بودی که همچون چون موت یعنی چون من از ببودن، بوتن به بودن دل و ایره یعنی یک باره غرق اله شی بحر زدادی دم این دل به واسطت خوش ناچار و غرن او بنی آن چت نشد به تی ما چون غرامت به من و غرجوی روشتی از امادی این غزلت نوثق پارو غازنی هست هم به هم توضیح داده به ایتش هم معنی کرده و خودتون بریم ببینیم حافظ قرن هشتون در قرن نهام سائری هستان هم شاهدائی شیرازی این شاهدائی شیرازی مصنوی داره اینا هم کان ملا هست در حوض هفتت و به قرن این چاپ شده جز اینتراد دانشقا تبریز تفصیل پاشتشان سید حالا قرن نهام و همچنین سعدی که آن مسلسات یه بهتش عربی است یه بهتش فارسی است یه بهتش پهلوی باز یه بهت عربی یه بهت فارسی یه بهت پهلوی تا آخر زبان پهلوی این زوده اپنی نمیره اما زبان نوشتارش زود مورد یعنی بعد از گذشت 50 سال دیگه عملا کسی که پهلوی بخونه و پهلوی بنویسه به جو آخونده زردوشتی نبودند. با اونا کارشونو پنهان میکردن دیگه چیز نبود دیگه این که وقت بر بسر اون وقت یه مرد بزرگی پیدا شد که در جوانی هم سرشو به باز داد و همین همینجور به نام عبدالله ابن مغفق روزبه به سر به فارسی، این ستابای بسیار زیادی رو برای اینکه از بین ندر از پهلوی و عربی ترچه میکرد از جمله اون کارهاش قلیله و باقی م کلیله و دمنای عربی ترجمه عبدالله ابن مخفی از پهلوی بره و همینجوری که در فارسی اگر از هر مدرس دفته ای بپرسن که کتاب شماره یک نصف فارسی کدومه میگن گل سون اگر از هر عرب زبونی که در روز تحصیلاتی در دستان بشه کتاب شماره یک نصف عربی کدومه میگن کلیله قرآن و کلام خالق میگیرم کلام مخلوق نیستون به حساب در این مقایسه ها نمیارن طبی. کتاب شماره یک خلیده. یه ایرونی که سی سالگی کشتن تیکیت کش کردن این ترجمه کرده و ایمون. این اون این اجد رو ترجمه کرد به عربی به نام سیر الملوک سیره یعنی بیوگرافی سیر الملوک یعنی زندگی نامه شاهان این کتاب هم از مینون رفته ولی پاره هایی بوشه هایی ازش در کتاب های عدد باقی مونده جمعه از گرمولوک ابن مغفر هست از, از, از فحلبی به عربی بلکه زبون دارد دیگه زبون عربی سید اونمیخواست با سواددار داشته باشه از طرف دیگه همون نامه پهلوی دو سه قسمت جدا داشت که این دو سه قسمت رو من در شاهنامه که وقتی خواستم هرز بزنم که محتویات شاهنامه چیه خواهم گفت ولی برجت یه قسمتش زندگینامه هم پاکچهان بوده که این مطابق کتاب های تاریخه هم که در تاریخ تبری هم هست در مروج و هست در جه دیگه هم هست در این خداینامه هم بوده در شامنامه هم گفتم عکساشون هم بوده یه قسمت دیگه که بخش نماسی و بخش حساسیری او اینکه مردم خیال میکردن که این تاریخه و با خود فرزوسی هم خیال میکرده این تاریخ داره میگه اما مردم این را سینه به سینه نقل میکرد. یکی نامه دیدن پر از راستان پسندیده از زفر راستان سفانه ای بود و منصور بود توایض پیوند او دور بود گذشته و رو سالیان دو هزار گریدون که بعد